فرن آیا چیزی به نام علم اخلاق داری؟ علم اخلاق داریم ولی فایده ای نظره علم نیست اخلاق آگاهی به درد نمیخوره دانش اخلاق به درد نمیخوره یه چیزی باید باشه که توانش بیاره اون چیزایی که از گروه دانشی هست در دین خیلی بهش نظر نمیشه اگرچه انسان باید عمل خوب رو یاد بگیره عمل بد رو یاد بگیره این یاد گرفتن مقدم است اما مطالب دین که یک قسمی از دین هم اخلاق علمی باشد نه ما اخلاق نظری و علمی داریم مثل این کتاب که هست کتاب مراج و ساده جامع صادات. و سادات. یا اخلاق ناصری، اخلاق ابن مسکوی و محجت البیزاید، فیض، ایهالالوم غزالی، اینا همه اخلاق علمیه. اون اخلاقی که مدد نظر هست و کارسازه و انسان رو به عادتهای الهی میرسونه اخلاق عملیه. و اخلاق عملی از قرآن و روایات فقط به دست میاد. اصلی چه دست